پسل پنجام انگامی که محمد دم دروازه رسید، آفتاب تازه داشت خودش را از گوشه آسمان بیرون می کشید و لح لح می زد و براده های تن سوزانش را تو هوا می پاشید دم دروازه اسمش دم دروازه بود آنجا دروازه نبود بوشخ دروازه نداشت راست بازاری بود بی سخت و با سخف که دکانهای جور واجور در این سوان سویش چیده شده بود حالا صبح زود بود و فقط دکانهای نانوایی و کماجی و کلپزی و فرنیپزی و غنادی و بقالی و هلیمی باز بود دکانهای دیگر که خوراکی نمیفروختند بسته بودند مه و هوا لای زرات خورشید پرپر میزد سر و ریخت محمد عوض شده بود لباس تنش بود نو نوار شده بود و یک شلوار کوتاه و پیراهن آستین کوتاه از کتان سفید کلفت هندی تنش بود چند روز پیش رفته بود بازار و دم دکان پدرم و گفته بود آکه اسماعیل یه پارچه میخوام کم کفنم باشه و هم رخت تنم پدرم گفته بود زار محمد این حرفا چیه میزنی؟ کسی که میخواد رخت نو بخره که از این حرفا میزنه. تو ماشالله هنوز اول عمرته تو پهلوونی؟ محمد چیزی نگفته بود و شش تومان داده بود و شش گز کتان سفید کلوفت گرفته بود و رفته بود و حالا همان کتان را دوخته بود و تنش کرده بود. یک چوخه سفید نازوک بوشهری رو لباس تنش بود و روی آن یک قطار فشنگ بسته بود و قطار را با دو بند سفید چپ و راست به شانه‌هایش محکم و چسبان کرده بود. کارد و تبرش را تو بند قطارش زده بود و تفنگ مارتین را همایل کرده بود. تا ساق پایش را گرفته بود و زیران پاهای سیاه سوخته پشمالودش پیدا بود. پاهاش پتی بود. کلاه نمدی نخودی رنگی سرش بود و زلف‌های سیاه پرپشتش پس گوش و گردنش چتر سده بود. جلد و چابک و تمیز بود. این سروریخت تنگسیرها و آن آنها بود. از میان قطار شطوری که تازه به شهر رسیده بود گذشت و آرام به دکان کماجی آمد و دو تا کماج پر پرکنجد که تازه سینی آن از تو تنور بیرون آمده بود خرید. بعد رفت تو دکان قنادی کماجی و قنادی بقل هم بودند. استاد حبیب قناد را خوب می شناخت و مشتری دائمیش بود. استاد حبیب داشت سینی های کلوچه و مسقطی و پشمک و سلوگه و بادام و هاج بادام و گیس انبری و شکرلب و حلوای نانک و حلوای راشی و حلوای سنگلک روی پیشخان میچید. سوهان های اصلی شفاف هر یک بندازه یک دوری بزرگ با دانه های درشت بادام که تو آنها نشسته بود از بالای چارچوب در دکان آویزان بودند و تاب میخوردند. استاد قناد اندامی کوچک و لاغر داشت که یک سبیل پرپشت خاکستری رو دهنش خوابیده بود. ارقچین چرک مرده‌ای به سرش بود و پیراهن ململ بلندی از شانه ها تا پشت پاهاش افتاده بود. اندام کوچکش پیش هيكل درشت و نخراشیده محمد تو ذوق میزد. محمد رفت تو دکان و سلام کرد. دکان با آن همه دیگ و پاتیل و کفچو و لنگری های مسین برای حیکل محمد کوچک بود. محمد تو روی قنات خندید. خندش دوستانه و خوشایند بود. یک خنده شاد رو خنده بویناک همیشگی او نقش بسته بود. استاد قنات از دیدن وضع مرتب محمد تعجب کرد. هر روز او را دیده بود که رختهایش جور دیگری بود. دکان قنات تو بازار بود و هر روز او از قنات خرید می کرد. نقل و نباد برای بچه هاش از او می خرید. دندان های زنگ خورده قهفهی غنات از زیر لبهایش هویدا شد. زایر خیر باشه. صبح به این زودی خیال کجا داری؟ بینم که چی شدی. بله توفنگچی شرکت نفت شدم. می خوام برم آبادان. خیلی بهت میاد. مبارک باشه. تنگسیر بایدم چی باشه. جو فروشی کار تو نبود هر کسی یه کاری داره خوب کردی دکونت را فروختی دکانداری کار مردم بی دست و پاس حالا یک چارک از اون های زعفرانی خوبت بکش بده حیف که از این های لذیذ تو دیگه تو آبادان گیرم نمیاد اینکه کاری نداره کاش که همه کارا به این آسونی بود هر وقت خواستی برات میفرستم آبادان که تا اینجا یه قدم راهه هر روز بچا میان و میرن هر وقت خواستی پیغون بده برات میفرستم و مسختی را کشید و گذاشت رو کماج جلوی محمد کماج برشته خوش نقش از بار گرفتن مسختی خوشگوارتر شد بعد قناد دنباله حرفش را گرفت حالا کی ان سفری هستی تا یه ساعت دیگه خدا بخواد حرکت میکنم. بعد یک لقمه گند از کماج و مسختی تو هم مچاله کرد و تپان تو لپش که قلمبه زد بیرون دو لپی می‌خورد طلب دست کریم چه میشه قناد گفت و تو رو محمد خیره شد. محمد قشقش با لغمه تو دهنش خندید و با دهن پر گفت تو که سرد و گرم روزگار چشیدی؟ آخه آدم اگه پول بی دست آدم بازبون بده دیگه میتونه ازش پس بگیره؟ فعلا که ما روایی ما و شیر. دلش برای کار و نقشهی که در پیش داشت پر میزد و خوشحال بود که خیلی زود تقه کار در می آید و همه صدای گلوله محمد تنگ سیر را از بیخبری استاد قناد زخ کرد و از فکرش گذشت خدا بخواد یه ساعت دیگه خوب دستگیر همتون میشه که چه جور طلبم را از کریم میگیرم استاد قناد با تعجب به او نگاه کرد و گفت به خدا تو دل و زهله شیر داری هزار تومن بالا کشیدن و آب و خونک روش کردن حالا تو داری قش از ته دل میخندی اما این آکریم آدم خیلی بی غیرتیه همه بوشهری ها اینجور نیستن آدم بافوری غیرت نداره. حالا یا غیرت داره یا نداره من نمیفهمم. فهمم. کسروفر را یک جا بالا کشیده. چکار کنم؟ برم بکشمش؟ این را گفت و باز تو دلش خندید و تو دهن قنات نگاه کرد ببیند چه می گوید. برن جواب خدا را بدن. کجا؟ اون دنیا. اون دنیا تا اینجا خیلی راهه. اگه یه جوری بشه که تو همین دنیا حساب بس بدن بده؟ نه خیلی هم خوبه اما اینجور آدما جای نمیخوابن که آب زیرشون بره های دنیا را خوب بلدن خدا لعنت کنه اون شیخ ابو به شکم گنده را که برات کاغذ دروغکی ساخت نوسا اشتباه میکنی اینا های دنیا رو اگه بلد بودن راه درست میرفتن این راهش نیست که شیخ ابو به برازجونی با یه من ریش و پش جای پیغمبر به و مردم را لخت کنه پیغمبر چرا باختی همچون جانشینی برای خودش بذاره من گود ریش و عمامش رو خوردم گود تسبیح و قرآنش رو خوردم استاد حبیب یک دستش را به کمرش زد و سرش را نزدیک محمد آورد و گفت اما این را بدون که شیخ ابو تراب سر کار تو خیلی زمین خورده دیگه هیچ که پیشش نمیره کاری بهش رجوع نمیکنن. همه بوشهری ها میدونن چه به سر تو آورده مردم همه کاراشون میبرن پیش آسیدلی کازرونی این که برا فاتی نمیشه. تو که خودت زایر بچه نیستی اینا همشون با هم شریک بودن همه میدونن که پولایی تو رو میون خودشون قسمت کردند. تازه آقا علی کشل چل تو من دیگه هم میخواد محمد این را گفت و باز با دهن پرخندید و تو بازار را نگاه کرد لغمه کماج و مسقطی از تو دهنش بیرون زده بود استاد قناد با شگفتی پرسید چهل تو من؟ میخوای بهش بدی؟ چکنم؟ امروز دیگه ناچرم بهش بدم اینم بالای همش هم کارم رو تموم کنه باز خندید لقمهش رو بلعیده بود و داشت یک لقمه کله گربه‌ای دیگر تو مشتهایش مچاله می کرد. زایر تنگی به همون اندازه که مرد و دلاور و زن بهادرین همون هم صاف و صادق هستین مبادای پول سیاه بهش بدی اینا یه سال تو رو سر می‌دونن اگه کارکن بودن تا حالا کار درست شده بود اینا تو را جایی گاوه شیرده گرفتن و مرتب می دوشنت. محمد خندید و یک تک روزنامه را که روی پیشخوان بود برداشت و دست و دهنش را با آن پاک کرد کماج و را خورده بود خوراک سه نفر را خورده بود بعد پول غنات را داد و گفت اگه صاف و صادق نبودیم که بندریا یا غارتمون نمیکردن. وقتی ما میبینیم یه آدمی باریش و پشم و محرر و قرآن پلوی دستش تو خونش نشسته میگه من جانشین پیغمبرم مامزودی ازش قبول میکنیم نما بندریو چون همشون تو دروغ و دقل بزرگ شدن به این زودی گول نمیخورن زایر قصه نخور حوالشون بده به تیغ برهنه حضرت عباس تو از هر انگشتت 100 تا هنر میریزه با این انگلیسی ها کار کردی زبونشون را میدونی ماه تا ماه حقوق چرنگی تو دستت. کاشگی من جایی تو بودم محمد راه افتاد و گفت او صحابیم هلالمون بکن قنات گفت حلال زنده ای؟ از دکان بیرون آمد اما دلخور بود پول که مال قنات نبود دلش بسوزد هزار تومان نقره چرخی را از چنگش درآورده بودند هی با آن نسیت میکنن همه تون یک کرباسین هی نسیت هی نسیت هی hey, باگذارشون کن به خدا، هی hey, به تیغ برهنه حضرت عباس، برای چه؟ آفتاب بلند شده بود و بازار شلوغ بود مزدورها برای خالی کردن بارهای کشتی به طرف اسکله و گمرک در تکاپو بودند هممالهای نیرومند کازرونی و دوانی با بارهای سنگین و ستبر میان گمرک و تجارتخانه ها آمد و شد میکردند. از پله دکان دلاک بالا رفت دلاک تازه دکانش را باز کرده بود و محمد مشتری اولش بود. سلام علیک رد و بدل شد. دلاک که داشت تیغش را رو سنگ ساب تیز می کرد از دیدن محمد یک که خورد. او را هیچ وقت به این سر و ریخ ندیده بود. محمد مثل همیشه آرام و خندان بود. اما رختش نو شده بود. تفنگش را آرام از روی دوشش برداشت و نشست رو صندلی، و تفنگ را خوابان تو دامنش و تو آینه جلوش خیره شد و به خودش نگاه کرد. خودش را با این لباس تو آینه ندیده بود. پیراهنش را که زیر بند قطارش چروک شده بود صاف کرد. موهای صورتش بلند بود. کمی سر و گردن و شانههایش را عقب کشیده و به عکس نیمتنش که تو آینه بزرگ دکان افتاده بود نگاه کرد. لبهایش را جمع کرد و رو غبغبش فشار آورد و تو چشمان خودش خیره شد گوشه چپ آینه یک بلبل و چند تا گل سرخ رنگ و وارنگ نقش شده بود و رطوبتی که از پشت جیوه آینه را خورده بود آن را کدر ساخته بود به نظرش آمد رنگ صورتش تاسیده شده بود به تهریش خارخاری خود نگاه کرد و به دلاک گفت اوسا دستا درد نکنه زودتر به جمب ترسم جهاز حرکت کنه دللاک تیغ را گذاشت رومیز. میز کلاه محمد را برداشت و پیشبند را انداخت رو و اون را پشت گردنش بست زایر خیر باشه با امید خدا سفری هستی؟ دللاک پرسید و دستش را تو آب بلرمی که تو کاسه بود فرو برد و صورت چرمین و چرب محمد را مالش داد می بله میبینی که تو چی شدم میخوام برم آبادان دست خدا و همرات، خوب کاری میکنی، بوشهر جای موندن نیست، همه مردمونش دارن از توش فرار میکنن چه اونایی که میرن شیراز و چه اونایی که میرن عرب سون دخل و درآمد دیگه توش ته کشیده، آبادان از آسمونش طلا میباره دیگه چه کار کنیم؟ باید زن و بچه رو نون داد، اینجا کاسبیمون نگرفت آخه هر کسی یک کاری داره اما اگه عوض جوفروشی آهنگری که کسبت بود واز کرده بودی نه بهتر بود نمیدونم شاید اما دیگه از کسبم سر خوردم ما به ما حقوقی میگریم و میگردیم کسب از بوکاری هارونزادگی میخواد که تو ما تنگسیران نیست تیغ رو صورت محمد میلغزید و موهای خشن سیاه در هم پیچیده خمیر شدهش نوله میشد و تو دامنش میافتاد بوست صورتش که از زیر موها درآمد رنگ مس گداخته بود. کارت با کریم چه شد؟ چیزی از فولاد داد؟ باز دللاک پرسید. نه یه نداد. پس چه کار میکنی؟ به تیغ برهنه حضرت عباس حوالشون میکنم. زنگ مسخره و خشم دور کلماتش را گرفته بود. وقتی که حرف میزد از تو آینه چشمانش را تو چشمان دللاک دوانده بود. این بهترین کاره. دلات گفت و تیغ موالود را روی پیش بند کشید. باز گفت مال حروم عاقبت نداره. یقین بدون که تا هفت پشتشون هم که بگذره خیرش نمی بینن. اما به نظر من اگه یه شکایتی به احمدشاه شا می, می فرستادی که روم بد نبود. بالاخره شاه مملکته. باور کن که احمدشاه اصلا نمی بوشهر مال ایرونه یا مال عربستون. سپس بلند خندید و باز تو چشم دلاگ و دو چشم خودش نگاه کرد. چشمانش درشت و خونین بود. دللاک چیزی نگفت و نخندید. محمد باز گفت: خدا خیرت بده. کی به فکر کسیه؟ از این ها خیلی شده و گوش کسی بدهکار نبوده. اصلا یه جو غیرت تو این مردم نیست. روزی کارگزار پا می‌شاست رو میاد اینجا مردم را میچاپه و راج را میگیره میره، آب تکون نمیخوره. پولت رو هم رفته چقدر بود؟ هزار تو من. این را گفت و تنش زیر پیش بند موج خورد. به تفنگش که تو دستهایش بود فشار محکمی داد. حسدش سر آمده بود. میخواست شود برود. اما دلاک تازه ریشش را تراشیده بود و میبایست تیغی هم پشت گردنش میانداخت. در همین موقع سرش به اشاره دو دامنش خم شد و تیغ پشت گردنش زیر زلفهایش را خاراند. هر دو خاموش بودند. محمد تفنگش را فشار میداد و دلش برای رفتن شور میزد. فقط سبیلش یک قیچی کاری دازم داشت تا کارش تمام شود و برود دنبال کارش توفنگ را همایل کرد و پولی به دلاک داد و خداحافظی کرد و از دکان آمد پایین و راه بازار معین را پیش گرفت قاطرهای اعمال باشی با سندوهای بزرگ مال و تجاره ریسه پشت سر هم تو بازار در آمد و شد بودند دکانها تک تک باز میشد و صدای قاطرچی های دوانی که فریاد میزدند، خبردار برو بالا که غالب بازار اومد قاطی صدای شربت فروشان و ماهی فروشان دور گرد که با سطح های لعابی پر از شربت آب و یخ و بندیل های ماهی تازه تو بازار را افتاده بودند بلند بود ششمان کنچکاو محمد پیجوی دکان کریم بود و نخستین بار تو او را دید، از زاویه دو تا صندوق گنده بود که بار غاتر بود. از فضایی سگوش میان دو صندوق کریم را دید که چهار زانو روی سکوی دکانش نشسته بود و لبهایش می جنبید. محمد دردم دانست که برای گشایش کسب و کار خود دارد ورد و دعا میخواند. بارها او را از نزدیک در آن حالت دیده بود. دیده بود که صبحها که دوکانش را باز میکرد چهارقولل میخواند. دو روز بود او را ندیده بود و حالا به دیدن او خون به سرش هجوم آورد. دندانهایش روی هم ساییدن گرفت و پرهای بینیش تاب خورد و باز و بسته شد. لبهایش را چفت کرد و تفش را بلعید. زبانش را سفت به دندانهای کلید شدهش زور داد و آخرین چکه آب را غورد داد. از صورتش تو هم پیچ خورد و نفس نفس میزد. قنداق تفنگش را تو دستش گرفته بود و آن را به پهلویش فشار میداد. خم شد و از زیر بندی که دو قاطر را به هم بسته بود گذشت و سپس خودش را بالا کشید و راست راه رفت و جلوی دکان کریم ایستاد. ارباب سلام محمد، با دهن خوشگیده گفت و با گوشه چشم این طرف آن طرفش را پایید. سلام! کریم جواب داد و سرش رو گردنش پیچ خورد و از صورتش پرید و بعد رو زمین توف انداخت. کریم کوتاه و لاغر و رنجور بود. گردنش تو سینهش فرو رفته بود و سر گنده شقیقه بیرون جستهای رو گردنش سنگینی می کرد. نیمگز و قیچی و چهار تاقه پارچه بقل دستش بود تنها بود با دیدن محمد اخمهایش تو هم رفت و گفت بر شیطون لعنت دیشو خود دیدم که دیوار خرا روم خراب شده بود حالا صبح اول دشتی تحبیق شد لعنت خدا بر شیطون حروم زاده. تو بازم اومدی؟ این صبح اول صبحی از جونم چه میخوای؟ محمد راست ایستاده بود آرام بود خوب میدانست برای چه کاری آمده جای سوال و جواب نبود باید همه چیز به یک چشم برهم زدن بگذرد آدم های گرفتار آلوده پاورهنه و شتابان تو بازار شلوغ آشفته در تکاپو بودند محمد با گوشه چشم همه می میپایید آرامش محمد پشت کریم را لرزاند کریم جلوی خودش آدمی را دید که هیچ وقت او را به آن سر و ریخ ندیده بود او صبح پس از ناشتایی تریاکش را کشیده بود و کیفور بود. ناگهان ته حلقش ترخ شد و تو شکمش پیچ افتاد. از آنچه گفته بود پشیمان بود. سرش به دوران افتاد. دندانهایش از هم باز بود و بیان که لبهایش دکان بخورد ته گلویش باز و بسته می شد و زبان کوچکش می لرزید. چهره کبود و چشمان داغ محمد دگرگونش ساخته بود. انگار می‌خواست سقف بازار روسرش خراب بشود بعد زور زد تا از دهنش این جمله بیرون پرید زایر خیر باشه می‌خوام برم سفر اومدم شاید یه پول سر راهی ازت بگیرم همان خنده بو خودش تو چهره‌اش دوید کریم کمی حالش جا آمد خیلی خوشش آمد که محمد دارد میرود سفر و دیگر هر روز اسباب زحمتش نمی‌شود بعد دوباره آتشی شد و با کچ خلقی به محمد گفت بابت چه حسابی؟ مگه تو حرف حالید نمیشه؟ اگه پولی طلب داشتی حالا به داده بودن با گردن کلوفتی که نمیشه از مردم پول گرفت من که پولی ندارم به کسی بدم اگه منو آتش بزنن بولت کونه ازم بلند نمیشه حالا برو پالون خروسم را بردار محمد به کریم خیلی نزدیک بود ناگهان لوله تفنگ زیر بغل کریم رو پیراهنش جا گرفت کریم فقط سختی لوله را رو گوشت تنش حس کرد و بعد همانطور که نشسته بود تو هوا پرید و صدای خفه گلوله که چسبان گوشت خالی شده بود پیراهنش را مشتعل ساخت و رو سکو خورد زمین و خون کفالودی از دهنش بیرون زد و گروهی دور دکان جمع شدند. شتک خون تاقه های چلوار و آفتاب لگنی را ای کرده بود دیگر محمد آنجا نبود و نعش کریم میان گروه مردم گم شده بود کی بود؟ چی شده؟ یه نفر را کشتن کدام طرف در رفت؟ اون طرف من چیزی ندیدم همین حالا رسیدم تو چیزی ندیدی؟ نه بداییم بگیرینش آخر محمد تنگسیر کار خودش را کرد خودم دیدمش گفت حالا ببین چطور وقتی آتش گرفتی بولت کهنه ازت میاد از همین را رفت بس کن خفقون بگیر آخرش پدرش در آورد نازش شستش پولش را با گلوله از تو جیگرش بیرون کشید کجا در رفت دهنت ببند خود بیجا بیجا نکن کاریه که خدا خواسته راست میگه وره زیادی نزن آخر ظلم همینه تموم دار و ندارش همین پولی بود که به این آدم داده بود و او براش بالا کشید. آی آفرین به این تنگ سیر. آی دست مریض. خودم دیدم که از طرف خونی کاکی در رفت. اگه دیگه نفست در بیاد همچی با مشت میزنم تو دهنت سی و ستا دندونات میزارم تو کف دستت. دو نفر با هم گلاویز شدند. مردم آنها رو از هم سوا کردند و جمعیت زیاد شد و نش کف دکان کنجله شده بود.